حديث الشاشوم الأيمن فالأيمن حدیث زهری هست که از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه بازم بحث شیری هست از بزی میدوشن بزی که تو خونه داشتن ان حلبت که لرسول الله صلی الله علیه و سلم شاتون داجن من منزله که گوسفندی که تو خونه اولف داده میشده اونم در خونه انس بعد از اون یک اعرابی بوده و ابوبکر صدیق کنارش بودن بعد رسول الله بعد عمر بن خطاب میبینه که رسول الله صلی الله و سلم به اعرابی بده بعد میگه که ابوبکر یا رسول الله و رسول الله علیه و سلم در جوابش من یعنی اول راست اولاتر راسته از راست با شروع بشه این حدیث 6